بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام والسلام على و سید المرسلین و عالی و اجمعین اما بعد ما در سایی ارتیره رسول الله صلی اللہ علیه و داشتیم دو, دو هفته متوقف شد تا اینکه که الحمد لله رسیدیم و بحثو انشاءالله ادامه خواهیم داد امروز به بعد تا ببینیم تا خدا میخواد تا وقتی که هستیم انشاءالله هر وقتی اله نبودیم دیگه برنامه خراب شد چون اصل اینه که ما هر هفته شنبه ها باشیم لیکن وقتی که نیستیم دیگه خودتون دیگه عضومون من جایی سفری پیش میاد یا مسافرات میاد ما در درسه گذاشته بحت اززواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با خدیجه داشتیم بعد از اون معفض رسول الله صلی الله علیه و سلم و وقتا رسول الله بغار, بغار حراف و آمدن جبریه به نرزیشان و بعد از اون بحته اسلام و بدن خدیجه به رسول الله به نزد برقب نوفل الان رسیدیم به بحث شروع به دعوت کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم الان با خودمان در ارتباطه جبرعیب اومده و در تماس مستقیم با رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش خبر میده که چه بگه و چه نگه و چه کار بکنه و چه کار نکنه افتداری دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم نوعی تریت برشد اصلا که سرینی یعنی اونطوری که ما فکر می کنیم بعضی میگن الا روایاتی که اومده درش ضعف هم حاکم روایت می سراغ روایت که میگه که مثلا مدت سال رسول الله صلی بود و بعد در بعضی روایت میگه مثلا میگه چهار سال حالا این چه نوع که نداره و انقضام در اشعره صحابه نمیجری نگفتن لیکن الا اگر هم باشه به این نیست که دین و کسی نه رسول الله صلی علیه و سلم دعوت می‌دادند. دادند. کم اشخاصی که می و اعتمال داشتن دعوت مستقیمن می‌دادند. و اشخاص زیادی هم وارد اسلام شدن. ما آخرین قصه، قصهی که داشتیم در بحث اسلام و بردن از حال قصهی صدر نیوه وقاستید. وقتی که اومد اسلام آمورد و مادرش قسم کرد که دیگه غذا نخوره از این روز به بعد. نشست در خانه تا اینکه فرزندانش یعنی فرزندان برادران طرد نواقات اومدن با اسادانش باز کردن و به زور غذا در دهانش در بردن. خب این قصه از نواقات مادرش. اشخاص زیادی همینجوری مسلمون میشن. یعنی مثل از جمله هایی که هست در بحث ایمان آوردن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه اینو در صورتی بیرون مثلا در صحرای مکه از مکه بیرون میرن و عبدالله بن مسعود میبینن که همراه بز و جسفند هایی داره سالاری میکنه عبوبت و رسول الله تعالی و سلم از عبدالله بن مسعود درخواست میکنن که یکی از این بزه ها را بنا بگیدوش تا شیرش بخوریم عبدالله بن مسعود میگه که اینی مؤتمن و لفت بساقی من امانت دارم و اینا امانت هست در دست من و من نمیتونم به شما بدم خب میگه اجازه میدی که ما خود رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشون درخواست میکنن اجازه میدی که یکی از این هایی که شیر نداره و بچه هم نداره یکی از اینها رو من بگیرم و بدوشم و شیرش بکنم شیر نداره دیگه اینکه ضرری به کسی وارد نمیکنه یکی از بزه ها رو ابو بکر انتخاب میکنه از اون که شیر نداره و هنوزم نه هم هست و نه ای داره میاره بنظر رسول الله صلی الله علیه و آله تا سه تا دعا ای میکنه دعا ای قبل از اون بوز روی دوشان بعد از دعا میدوشن و شیر از دسانهای اون بوز تشکیل میشه و رسول الله صلی الله علیه و در اون ظرفی که بود از سنگ از اون شیرها میخورند و می نوشن و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجا بود که عبدالله بن مسعود تحت تأثیر قرار میگیره و رسول الله صلى الله عليه وسلم بي من فرمودن انك غلام المعلم فاقتل من فيه سبعين سورة ما ينزلن فيه احد وله رسول الله صلى الله عليه وسلم بي من قلتن كتو يك جواني تعليمي افته هستي كسي كبيرهاد باستباده و من خودم از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله 70 تا سوره از سوره‌های قرآن را هم شنیده. حالا این قصه اسلام خودشه. قصه های اسلام آوردن اصحاب زیاد در که مسلمان شدن از جمله مثلا عمرو بن ابی سلمی عمرو بن عاصی که من شخصی بودم که دنبال اسلام بودم و شنیدم که پیامبری اومده. خودش می‌گوید که من وقتی که شنیدم که پیامبری فرستاده شده اومدم به مکه و اومدم با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم ولی این همه در همون سال اوله میگوید که اومدم در نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتم که من میخوام اسلام بیارم بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم که هنوز بکتی نگوک برو به طرف قوم تا اینکه که خبری از من بهت برسه و اون تو اعلام بکن در همون حال جنا مسلمان بیشن در هم هم حالیکه رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام 20 روزی از روزها نماز صبح میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلام دوران تلاوت میکنن ایده از جن صداشو میشنون پشت یک درخت خودشون قایم کردن در بعضی روایت آمده که اینوها نفر بودن و آیات شینی نازل میشه یا قومنا طلب بعد از اینکه شنیدن و رفتن به قومشون گفتن یا قومنا ان سمعنا قرآن عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احدا جنیانم بعد از اینکه مشتمان ایمان می رسول الله هم اونها را ندیده بود، هنوز مکلب نشده بود که به اونها تبلیغ بکنه. بعد از این، خداوند به رسول الله صلی الله علیه و وحی میکنه و میفرمایند: قل اؤحی الی تا آخره. سوره جنی نکلا این آیات بر اثر شده صلی الله علیه و تسلم میشه. بعد از اون رسول الله ابلاغ میشه که بله جنیان هم به دعوتت گوش میدن. پس مواظب اونها هم باش و سعی بکن که به اونها هم چیزهای یاد بدی. خب تا اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم مباشرتا و مستقیما وارد نشده بود که دعوت بده تا اینکه این آیات نازل میشه و اندر عشیرات کل اقربی دیگه الان انذار بده انذار دیگه علنیه دیگه میعیس رو در رو بانها صحبت بکن رسول الله صلی الله علیه و سلم میرم بالای کوه صفا کوه صفح که تقریبا هلوش پنجاه متری کعبه واقع میشه میعسم بالای کوه صفا و صدا میدنن. یا فرش و یا بنی هاشم و یا فلان و یا عبد المناف همه اون چارده نسل فرش را تدا میدنند. فلان و فلان جمع میشن. جمع میشن و رسول الله صلی اللہ علیه و سلم چین خطاب اونها میده و میگه که ارائیتوکم لو اخبارتوکم انما خیلن تخرجو به تفحی هادا الجبل اکنتم مصدقی؟ یک سآل ازشون میکنم. میگهد که رسول الله صلی اللہ علیہ اگر من بهتون بگم که این کوه الان عصبی ازش میخواد بیرون بیاد یا خوشت این کوه عصبی هست آیا شما از من باور میکنید خب رسول الله گفتیم که قبل از اسلام شخص امانتدار شخص صادق بح بح بحث حجر و رفت, رفت رو کردیم وقتی که رسول الله صلی علیه و وسلم از در وارد شد گفتن که این امینه و این صادقه این قبول لاشتن که کسی تر از این جوان نیست همه ای اخلاقش، توازوش، رفتارش رو قبول داشتن خب گفتن ابو جهل میتاده، ابو لحب میتاده همه اونها هستن، سران خورش گفتن که آیا رسول ها فرمودن که آیا قبول دارید این حرف من اگر من بهتون خبر بدهم این حرفی قالو ما جربنه علیه که کذیبن ما تا حالا ثابقه دروغ هستنه نداشتیم. یعنی تا حالا دروغی به ما نگفتیم اقرار میتوند ما جربنه علیه ک خداوند دعوانت میخواد می‌خواد که خامات حجه بر بکنه حالا می‌بینی که بعد از این حادثه فورا تکذیب میکنند. الان قضیشو نقضار میکنن که ما حالا دوری قضا ندیدیم بعد از این حرفی خیلی کم و اندک وجه قاله میان قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید. من که بهتون انذار بدم قبل از اون عذاب نات خداوند خداوند عذاب درناکی داره به خداوند بر می‌گردید فقط خداوند را بپرستید همین چیزی دیگری از شما تاتی نمیخواد. فقط از شما میخواهم که به خدا برگردیم. اگر انسان نگاه بکنه یعنی از دعوا مررافه هایی که مثلا به فرض در زمان های قدیم میشه و جنگ هایی که بین قبیله فلانی و قبیله فلانی. یک شخص مثلا به فرض میره از قبیله فلی دختر بازی میکنه در یک قبیله فلانی دور کتک میخوره بعد قومش میان انتقام میگیرن. یا جاهایی مثلا ما قبل از اسلام داشتیم که شخصی مثلا میکشه از یک قومیبدچول خصاس هم مین پشت کوشاش ضروری میشه. به وجودی که مثلا اون قاتل میکشونه، قومش میان بولن پیشن به قاتل کردن قاتل دفاع بکنه. ولی رسول الله صلی الله علیه و آله از قریشه، صادق‌ترین، امین‌ترین، با و با اولین کسی که بهش پشت میده قوم خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین ابوی رسول الله صلی الله علیه و آله ابو طالب ببینید، رسول الله را تا وقتی که از دنیا میره. آخر عمرش یعنی ده سال دیده که رسول الله این همه معجزات از از ایشان دیده، هر شنیده، قرآن شنیده و میدونه که بر لیکن با این وجود اسلام نمیاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من نمیتونم تشکاری بکنم، میگم که شفاعت کردم که با خاطر این ده که از اسلام کرده عذابش کم بشه، عذابش، وقتی به پاش که مغزش بجوش میاد و نجاتم پیدا نمیکنه. بحث اینه که رسول الله با وجود این سخت تنها چیزی که ازشون خواسته بود همین حرف بود. که شما به خدا برای وجود باش دواش مبارزه کردن او رو بیرون کردن حالا میادش حالا در جلسات آینده چطور برخطات الله علیه و سلم برخورد کردن چه اذیت هایی شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین حین در وقت انتظار دادن الان روایت روایات ضعیف زیادی هست ازون روایتایی که ثابت در وقت همین انتظار و که رسول الله علیه و انظار میدن و مباشرة با اونها مباشر. صحبت میکنن اینه که ابولهب در اونجا بلند میشه و میگه تبللک اما جملته ان لا الا لهذا ثم قام فندلت هذه سوره بكذا بهذا وكذا این حدیث در بخاری مسلمه اینه که ابولهب بلند میشه میگه که وای بر تو یا همون زبان خودشون میگه تبللک اینه که فقط برای همین مرا جمع کردی که به ما که روز آخرتی هست و جهنمی هست میگه که بلند میشه و از اونجا میره و این سوره ناظره به بسید عبیده همه و تب مقرم و تا آخر سوره. بعد از این حادثه بس ابوذر زرزخاری هم هست در صحیح بخاری و مسلم اومده قصدش که خودش دنبال حق بوده و توجیه رو داشته. طرف نبوده، طرف نبوده. خودش میگه که من انسانی بودم که نماز برای خدا میخوندم. که بالا هم نمی دونسته همیشه بولم یوزن نمود می یه چیزی از دین ابراهیم از دین حنیف بیشتر رفیده بود. تو اینکه خبر رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه و میاد به مکه. ولی وقتی تو بدم میکنه. میاد به مکه و شب میشه علی رضی الله عنه و سلم ملاقات میکنه. بعد علی رضی الله عنه و سلم بدم به یه چیزی نمیگن. یک فقیعه فرآوه علی رضی الله عنه و سلم غریب است و نمی تواند از او که دید که انسان غریبی هست، زیافتش میکنه، مهمانیش میده و میبرکونه و حرفی هم وارد نمیزنه. این مساله شب فوق پیدار پی این مسئله ادامه پیدا میکنه. تا اینکه از علت آمدنش به مکه خبر میده به علی از الله علی. علی بهش میگه نبوخود من میرم فردا به نظر رسول الله ولی به کسی چیزی نمیگه. تا اینکه بس اگر اشاره دادم بدون که یه خبری خاطر زیر نمی کوت چون کسی نمی که نزدیک رسول الله صلی الله علیه و من رسوم بنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أزوحهم بريش خبر درس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إشبه نيكبر بثرة قومت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري نيكبر بقومت ونهار من خبر بدك تو إنك من ترسروا بقنا ميق قال والذي نبتي بيده لأصرخن بها بين ظهرانهم ميك قتام وخدك منا دربتة المشركين عن دعوت ميدان ميك خدش ميك فخرج حتى أتى المسجد مال من بيت المسجد الحرام فنادى بعلى صوت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادات ميدان أشهد أن لا محمد رسول الله ميك فسار القوم فضربوه حتى أضجعوا ميك ونقد وتكش زدن قد وتكش زدن كي بالزميلش عن دختران طاين كي بلانش دان عباد المعبد من مختلف الأمة فكيف شكر ميكوني اگر تجارت بنی غفار از ما بند بشه ما چه کار میکنیم اگر اون تجار نیان دیگه وای بر ما. و خود اونها میان انتقام از ما میگیرن. تا اینکه اونها را بلند میکنه و با... ابوذر بلند میشه من میره به قمشه. آخرین بحثمون از کسانی که اسلام آوردن بحث غماجه و ضاد غماج میگه که اینکه... من شخصی بودم در زمان جاهلیت که اگر کسی دیوانه شده بود، جن زده شده بود در زمان محلی خود مزرد کرده یکی اگر کسی چینی شده بود من روش میخوندم روش میخوندم روطیه هایی داشت حرفهایی داشت از سخنهای جاهلیت که میکن و جنها رو مثلا از بدن اون طرف بیرون میکرد یکی اومدم به مکه و گفتن که نزدیک این دیوان نرو، نزدیک یعنی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نروک گفتم اگر دیوانه هست که علاج دست منه من میدارم بکنم. ذمادرنا در مدر میگه که اومد نزد الله صلی و سلم. ك... رسول الله عليه و سلام و گفتم که بیا الله من میخوام تو رقیه بکنم گفتن که جن زده هستی من میخوام تو رقیه بکنم رو طهورم بکنم یا بخاطر بکنم این چیزهایی از این جن سر در میگردم بعد الله صلی الله عليه و سلام چینی میفرمایان خودبه چطوری میکنن چینی حالا اده مصر که جمن در جلو جمع جلو میخواد برسول الله صلى الله عليه وسلم وراء نجاة بذرة أنجنه الله القول القديش بيرم بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم درنج بنا مش لما مجان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسأله بعد مجانك وعشان لا إله إلا الله ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وعشان لا إله إلا الله وعشان محمد عبده ورسوله أما بعد إن جاب مجانك ذماد بيجد أحد هذه كلماتك هؤلاء إن مهم شدار خطبة مش لمين خطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه أسلف خطبة هم دعائين صحيح بخاري ومسلم. ميجيء أحد عليا كلمات كهؤلاء إن كلماته مش الدوارات من تكرار بكوني ميجيء فعادعون عادهنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. سبع رسل الله إن خطبيك مشكل وريز وخيل كم تكرار ميكونان إن الحمد لله نحمده ونستعينه. بس إذا ما تقدش ميجيء لقد سمعت قول الكاهن. وقول قول السحرة و قول الشعراء سمعت مثل كلماتك هؤلاء ثم أسلم وبايع بايع وقوم و قومه من أتمنى كمان قولت قفتهاي كفان قفتهاي الصاحرين و قفتهاي شعراء شنيدام يعني هر قطع صفانهاي كثير من الشعر مصرودان و تمامي كاهنها و كتابهاي و تمامي كالان بودم همينها شنيدام لكن مثل ان صفانان زيبا يسوننا در اونجا که اسلام میاره و اسلامش در جلوی مشرکین علام میکنه. ها این شخصی که این چنین کارهایی رو میتونسته بکنه، میتونه جن رو به فرون از جسم خیلی ها میاد در جلوی مشرکین آنامده به قول خود جن رو بیرون بکنه، جن خودش میپره. اون شخص در همونجا مسلمان میشه و اسلامش اعلام میکنه و بیعت میکنه با رسول الله صلی الله علیه و آله و خودش و اصراف قومش. این کلاسه بحث کسانی که اسلام آوردن، قصه‌های زیادی که هم زیاد هست بحث تو فیلو نمیدونم عثمان بن مظلوم دیگر صحابه صحابی های کلا در قصه هاش یا در اش قصه هایی گفته شده لیکن به علت ضعف اون روایت ها من اکتفا میکنم به این روایت های صحیح انشاالله هفته آینده بحث از یاد دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم اشرف مشکی الرفاعین داشت و سبحانك الله بحمدك سبحانك الله حمده و صلی الله بحمد الله و آله و